سپاس که با ما همراه هستید خبرهای دانمارک در هفته که گذشت رو به سهم شما عزیزان میرسانم با ما همراه باشید تحریم میوه های شیلی توسط دانمارک فروشگاه های از تصمیم خود برای ممنوعیت وارداده آوکادو شیلی به این کشور از روز دوشنبه به علت نداشتن استانداردهای سلامت و کیفیت خبر دادند. سخنگوی فروشگاه های زنجیره روز دوشنبه گفت واردات همه میوه و سبسیجاد هم از آوکادو به دارماک تا کنون مجاز بود از این پس از کشور شیلی ممنوع خواهد شد علت این تصمیم شراید سخت کشاورزان برای تهیه آب و عدم مشارکت و همکاری دولت با کشاور... کشاورزان شیلی بوده است گرانترین شهرهای اروپای غربی کدامن؟ کوپناک رتبه؟ چهارم واحد اطلاعات اکونومیست گزارش سالانه هزینه زندگی را که با در نظر گرفتن واملعواملی شامل قیمت مواد غذایی های سوخت و حقوق به بررسی ارزانترین و گرانترین شهرهای جهان میپردازد منتشر کرده پایگاه خبری بیزینس انسایدر در گزارشی بر مبنای آمار واحد اطلاعات اکونومیست به بررسی گرانترین شهرها در اتحادیه اروپا و اروپای غربی پرداخته است. کوپنایک همواره یکی از گرانترین شهرهای اروپا است. قرار گرفتن کوپنایک در رتبه بالای این فهرست به دلیل هزینه نسبتا بالای حمل و نقل و هزینه مراقبت شخصی است. طبق گزارش واحد اطلاعات اکنومیست زونیخ برای یک سال دیگر گرانترین شهر اروپا باقی ماند. و با این همه هزینه نسبی زندگی در این شهر اندکی کاهش یافته است به بهانه تولد هانس کریسیان اندرسون خالق جوجه اردک زشت و روز جهانی کودک هانس کریسیان اندرسون روز دوشنبه روز سهشنبه مذرت میخوام 2 آپریل سال 1805 در شهر اودنس در دانماک به دنیا آمد قصه جوجه اردک زشت داستان زندگی نویسنده دانمارکی است. جوجه اردک زشت یکی از داستانهای شاه پریانه، پریانی شاعر و نویسنده‌ای به نام دانمارکی به نام هانس گریسیان اندرسونه جوجه, اردک ز... جوجه اردکی در مزرعه سر از تخ بیرون و به واسطه زشتیش مورد ریشخن و تمسخر هر روزه دیگر حیوانات مزرعه قرار میگیرد تا اینکه با رسیدن به سن بلوغ به قوی زیبا و سپید تبدیل می شود و شگفتی و شرمساری دیگر حیوانات را برمیانگیزد جوجردک زش که کاملا برخواست از ذهن اندرسون بود و وابستگی به هیچ داستان آمیانه قدیمی ندارد نخستین بار در 11 نوامبر 1843 و همراه سه داستان دیگر از اندرسون در کوپناک دانماک انتشار یافت و تحسین منتقدان را برانگیخت. همچنین هایی در قالب اپرا موزیکال و فیلم‌های پویانمایی از این داستان صورت گرفته است اندرسون کودکی،, کودکی زشت روی بود و, از، و گیر او در نویسنده شدن نیز بسیار تولر داشت ولی در نویسندگیش تأثیری داشت این زش روی او و از سنین جوانی به نوشتن قصه و انتشار آنها روی آورد به طوری که او در اواخر عمر 70 ساله خود نویسنده مشهوری بود در همان ایام یک نفر از او پرسید که آیا قصد, به قصد ندارید قصه زندگی خود را بنویسید اندرسون پاسخ داد که او آن را پیشتر در قصه جو جوردک زش نوشته است زاد روز اندرسون روز جهانی کودک کتاب کودک نامگذاری شده است. نخس وزیر دانمارک با ترامپ رایت جمهور آمریکا دیدار کرد. این نخستین دیدار آقای کاسپسن با رهبر سیاسی تازه آمریکاست. نخست وزیر دانمارک دونالد ترامپ را انسانی سوتودنی توصیف کرده که با روی باز به پیشنهادات وی گوش داده است. ترامپ نیز قاسموسن را مردی فوقالعاده که عهدهدار شغلی فوقالعاده است توصیف کرده دو طرف پیش از نشستن در برابر دوربینهای تلویزیونی مذاکرات مفصل و فشردهای درباره ادامه مبادلات سیاسی اقتصادی و نظامی یکدیگر داشتند آقای قاسموسن همچنین مذاکرات مفصلی در خصوص معاده آتلانتیک با ترامپ داشته و اما هواشی سفر وزیر دانمارک به آمریکا. نخست وزیر دارماک ظاهرا از قضاهای کاک دل دلزده شده و علاقه قاسی به قضاهای فس بودی پیدا کرده با گروهی از محافظانش به یک از رستونهایی در جزایر ویرجین آمریکا شهر شال... شالوتالمی برای صرف غذا می‌روند جزایر ویرجین آمریکا در سال 1493 میلادی توسط دریانورد اسپانیایی کریستوف کلمب کشف شد تا سال 1666 میلادی در این جزیره بومیانی موسوم به هندیان کاراییب زندگی میکردن که با سیل مهاجرت به این جزای جمعیت بومیان رو به زبان رفت بریتانیا سه جزیره از شش جزیره عمده و بزرگ را تصرف کرد و سه جزیره عمده باقی مانده به همراه پنجاه جزیره کوچک دیگر که همه این جزیره بزرگ بیش از پنجاه جزیره کوچک این منطقه عاقبت به دانمارک رسید. و به عنوان جزایر هند غربی دانمارک شناخته شد در سال 1917 ایالات متحده آمریکا این جزایر را به پرداخت با پرداخت 25 میلیون دلار از دانمارک خرید از آن پس به نام جزایر به جزیره جزایر ویرجین دان آمریکا تغییر لاغه تابعیت دانمارک صاحب یک پیتزا فروشی به اتهام پیوستن به داعش دادگاهی در دانمارک در اقدام 20 سابقه تابعیت دانمارکی فردی را به اتهام پیوستن به داعش لغو کرد گزارش تی دادگاه عالی شرقی, شرقی دانمارک در اقدام 20 سابقه تابعیت دانمارکی فردی را به اتهام پیوستن به گروه تروریستی داعش لغو کرد است دادگاه عالی شرقی دانمارک در این باره اعلام کرد حمزه جاکان، کتابیات دانمارکی و ترک دارد، پس از گذراندن دوران زندان به ترکیه فرستاده خواهد شد. دادگاه کپنهاگ روز جمعه این فرد را به 6 سال زندان محکوم کرد. وکیل همزه جاکان سودرین را نو کننده خوانده است. جاکان که سابق یک پیتزا فروشی در قمه شهر کپنهاگ است، از سوی دادگاه به عضویت در داعش با لقب ابو آیتول دانمارکی متهم شده است و در سال 2015 گام تلاش برای سفر به سوریه بازداشت شده بود. 472 نفر کشته در 5 سال تصادفات رانندگی در دانمارک. سازمان پزشکی قانونی دانمارک مرگی 472 تن شهروند در تصادفات 5 سال بین سالهای 2011 تا 2015 را تایید کرده که این آمار برابر جمعیت 13 شهر و است تصادفات رانندگی یکی از مهمترین عوامل تلفات انسانی در کشورها محسوب می شود و برای همین کایش تصادفات رانندگی سال که از سوی پلیس و شهرداری دارماک در دستور کار قرار گرفته است بر اساس این گزارش آمارهای سازمان پزشکی قانونی کشور نشان می دهد در پنج سال بین سال 2015 یازده تا دو هزار پانزده هفتاد دو شهروند جان خود را بر اثر سوادث رانندگی در جادههای دانمارک از دست دادن که اگر این آمان را به مدت زمان پنج سال تقسیم کنیم نشان می دهد به طور میانگیر در این سالها هر چهل روز یک شهروند جان خود را در رانندگی از دست داده است قانون جدید برای دانندگان سک اگر از آن دسته کسانی هستید که در جنگل ها سگ خود را از قلاده در آورید تا آزادانه برای خود بازی کند از این به بعد باشید زیرا جریمه سنگینی در انتظارات است. سازمان حمایت از محیط زیست زیس قانونی را تصویب کرده که طی از این به بعد صاحبان سگ اجازه آزاد کردن سکایشان در جنگل را ندارند و سگ‌ها باید در هر زمانی در قلاده باشند و در صورت تخلف به مبلغ 2000 کنون جریمه دانمارک در رده بندی نابرابری زن و مرد حسب رتبه دو بین 160 کشور. ایران در رده بندی جهانی نابر... نابرابری جنسی... جنسیتی، جنسیتی 4 سخود سخوت کرد و در جاگاه 118 قرار گرفت. باز ما رکورد زدیم. سازمان ملل در جدیدترین گزارش از سلسل گزارش های توسعه انسانی به بررسی وضعیت نابرابری جنسیتی در 160 کشور جهان از جمله دانمارک بر پایه آمار سال 2015 پرداخته و شاخصی با همین عنوان ارائه کرده است و بسته به میزان برابری بین زن و مرد نمره‌ای به هر کشور در این شاخص داده می‌شود رتبه نخست جهان نظر شاخص نابرابری جنسیتی را سوئیس با نمره 400 اومده کسب کرده و دانمارک و هلند به ترتیب در رتبه دوم و سوم قرار گزارش سازمان حقوق بشر دانمارک آزادی مذهب را رعایت کند و نژادپرستی در این کشور افزایش یافته. یک تحقیق جدید از طرف سازمان حقوق بشر نشان می داد که از هر هفت کامنتی که توسط دانمارکیان نوشته شده، یکی از آنها نژادپرستانه و با تونی زننده و خسمانه در مورد خارجی تواران بوده است. این برخورد خصمانه زمانی بیشتر شده که موضوع مورد بحث در مورد مسلمانان و اسلام بوده است. به همین دلیل سازمان حقوق بشر با انتشار آماری متذکر شده که دانمارک آزادی مذهب را رایت نمی کند و نژادپرستی در این کشور رو به افزایشش دو خبر از خاندان سلطنتی همسر ملکه دانمارک دیگر نمی‌خواهد جزی از زندگی او باشد. از زمانی که ملکه دانمارک خانم مارگارت به همسر فرانسوی خود پرنس هرنیک اجازه نداد تا بتواند شاید دارمک شود، رابطه بین این دو زوج شکراب شده و باعث ایجاد اختلافاتی شده که به طوری که پرنس در اکثر مراسم عمومی غیبت داشته و حتی به تازگی بدون ملکه به مسافرت رفته است. این در حالی است که پرنس هرنینگ فرانسوی ماهانه مبلغ 66675000 کرون به عنوان حقوق از دانمارک دریافت می کند جشن مسیح شدن شاهزاده فلیکس با حضور خاندان سلطنتی شاهزاده فلیکس که 14 سال دارد چند روز پیش برای اجرای مراسم غسل تعمید به کلیسا رفت و به دین مسیحیت جواب بله داد و به این دین گروید. مراسم جشن مسیحیت این شاهزاده همراه با حضور خانواده سلطنتی برگزار شد و آخرین خبر از آلبرگ، حادثه تیراندازی در آلبرگ، دو نفر زخمی شدند. بر اثر شلیک گلوله در پارکینگ یکی از فروشگاه‌های زنجیری کیوی در آلبرگ، دو نفر زخمی شدند. پلیس می‌گوید این دو نفر را دستگیر کرده چون در وقوع این حادثه دخالت مستقیم داشتند. نفر سومی حادثه همچنان فراری است. این حادثه شنبه گذشته ساعت 21 رخ داده. و در پی وقوع آن رانندگان از صحنه گریختهاند پلیس درباره هویت این افراد اظهار نظری نکرد اما رسانه‌های محلی می‌گویند ماجرای تیراندازی مربوط به اختلاف و درگیری های مافیایی در دانمارک بوده است پلیس میگوید دو نفر تباهکار دستگیر شده و در این حادثه حاضر به همکاری با ماموران پلیس نیستند اما شواهد زیادی از درگیری توسط شاهدان عینی به دست پولی. ماموران پلیس رسیده است شاد باشید تندرستیتون پایدار